دروز شنوندگان و هموتنان عزیز فرشیل نسولایی هستم از, از رادیو الورز اناوین خربری مربوط به پناهندگان در هفته گذشته رو به سم شما میرسونم یک خبر از ایران فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی تابعیت ایران را میگیرند کمیسیون فرهنگی مجلس حکومت اسلامی تصویب کرد که فرزندان حاصل از اززواج مادران ایرانی با پدران غیر ایرانی می توانند تابعیت ایران را بگیرند این تر در دور قبلی مجلس رد شده بود سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس و رژیم اعلام کرد که این کمیسیون روز سهشنبه 20 تیر طرح های تابعیت ایرانی به فرزندانی که مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی دارند را تصیب کرده به گزارش خبرگزاری ایرنا بر اساس این مصوبه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای کسب به ایرانی دیگر نیاز به سلب تابعیت پیشین خود از طریق پدر را ندارند اعطای تابعیت از طریق مادر در ایران به رسمیت شناخته نمی شود همین امر باعث سردرگمی گست... سردر و بلا تکلیفی به خصوص کودکانی شده که حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی بوده این تر مدت هاست که مورد بحث و گفتگوست مهرماه سال 1394 در مجلس قبلی کلیات این طرح مطرح شد اما اکثریت نمایندگان با آن مخالفت کردند مخالفان تر مذکور تابعیت بخشیدن به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیر را از جمله عواملی برای تشویق مهاجرات به ایران دانستند شاین دختر مولا معاون امور زنان ریاست جمهوری رژیم در اولین وعده های خود پس از احراز این پست ائتای تابعه از طریق مادر را نیز ترک کرد که قول پیگیریان را داده بود. 23 میلیون نفر در سطح جهان برای مهاجرت برنامه‌ای مشخص دارند. طی آماری که توسط سازمان بین‌المللی مهاجرت منتشر شده است، میلیون‌ها نفر در سراسر جهان خود را برای مهاجرت آماده می‌کنند. بنابر این تحقیقات، یک موسسه وابسته به سازمان ملل آلمان در میان کشورهای مقصد به لحاظ محبوبیت ششم است. نتایج این تحقیقات بر اساس نظرسنجی موسسه گالوپ صورت گرفته. گسترده این نظرسنجی 160 کشور را شامل می شود سازمان بین‌المللی مهاجرت بر اساس این تحقیقات اعلام کرد که تصور مهاجرت به کشورهای دیگر برای 710 میلیون نفر در ابعاد جهانی تصور نامعقولی نیست. شماره افراد مایل به مهاجرت نسبت به سال 2010 افزایش بر 5 درصدی داشته است. کارشناسان پس از بررسی داده های برآمده از این نص اعلام کردند که 23 میلیون نفر به طور مشخص به دنبال مهاجرت به کشور دیگر هستند. همین کارشناسان با عظیمت از نیجر... تجربه در نیجریه سالیان قبل اعلام کردند که یک سومیت تعداد معمولا برنامه خود را عملی می کند. و اما کشورهای محبوب بر اساس نظر سنجی مؤسسه آمریکا مقصد نخوس کسانی است که برنامه برای مهاجرت دارند پس از آمریکا کشورهای بریتانیا، کانادا و فرانسه نیز در های بعدی قرار دارند آلمان نیز از حیث محبوبیت در رده ششم است نیمی از مهاجران جهان از 20 کشور و عمدتان از کشورهای آفریقایی میآیند. در این میان بیشترین تعداد مهاجران که شهروندان دو کشور نیجریه و هند هستند در سال 2015 دو میلیون نفر مهاجر وارد آلمان شدند. باز یک خبر از مدیترانه. یک کودک در قایق مهاجرین در مدیترانه به دنیا آمد. در انبو در میان انبوهی از خبرهای تراژدیک خبری از تولد کودکی در یک قایق حامل پناهجویان در, در دریای مدیترانه منتشر شد. جریان به دنیا آمدن این کودک ثبت خاطرات نیروهای نجات و در, در مدیترانه شد که اغلب با قزایای قوانگیزی مواجهند. دریای مدیترانه به دلیل هزاران مهاجری که در آن غرق شدهاند به عنوان گورستان پناسوران یاد شده. در هر هفته دهها پناچو در راه رسیدن به اروپا ناپدید شده و جان خود را از دست میدن و بسیاری ها تومه حیوانات دریایی شدند. اما این بار گزارش متفاوتی مبنی بر تولد یک کودک با سلامتی در قایق حامل پناهجویان به نش میرسند نیروهای نجات که هر لحظه گوش بزنگ دریافت خبر واژگون شدن قایقهای پناهجویان در هر گوشه و کنار میدی آن، این بار خبر غیر متقبی را دریافت کردند که به دنیا آمدن یک بچه است تیمون مارسلاری کرئیس سازمان S.O.S. دویچلند در مدیترانه گفت تولد این کودک در مسیر فرار آن هم در غار دریا گسردگی ماجراجویی را رق ماجراجویی رقتبار را بشری را در برابر چشمان ما مجسم کرد این نشان میدهد که یک خانم در کدام شرایط دشوار قرار می گیرد که اندکی پیش از تولد تصمیم به بالا رفتن از قایق و عبور از مدیترانه خطرناک است تعداد زیادی از خانواده‌های پناهندگان در انتظار آمدن به آلمان دویست الی سیصد هزار نفر پیش بینی می‌شوند. دولت فدرال آلمان پیش بینی می‌کند که حدود دویست تا 300 هزار تن با به دست آوردن ویزا وارد این کشور خواهند شد. این افراد مستحق که با اعضای خانواده‌های خود در آلمان زندگی کنند. روزنامه بیلد ام زونتک به نقل از وزارت خارجه فدرال آلمان نوشت پیش بینی می شود که از 200 تا 300 هزار تن به دیگر با به دست آوردن ویزاهای ویزا به وارد آلمان خواهد شد این محاسبات نظر به ویزاهای اعطا شده و درخواست که در انتظار دریافت ویزا هستند صورت گرفته است دولت فدرال به گونه مشخص از اعضای خانواده های پناهجویان سوری و عراقی در این پیش بینی یادآوری کرده در حال حاضر متقاضیان ویزا برای الحاق با اعضای خانوادهشان در آلمان مکلفن که چندین ماه را برای دریافت وقت ملاقات در نمایندگی های سیاسی آلمان در خارج سپری کنند لباتون خندون، دلاتون شاد، تندرستیتون پایدار عزیزان